پادشاه در تمام عمرش به سمت شرق خیره می‌شد و سکوت می‌کرد و یک چشمش گریه می‌کرد و یک چشم دیگرش می‌خندید همه از این ماجرا تعجب می‌کردند اما هیچ کس نداشت از اون پادشاه قدرتمند راز کارش رو جویا روزی سه برادر با هم درباره کار شگفنگیز پدرشون صحبت کردند و گفتم باید از سر کار اون آگاه بشن بزرگترین برادر به اونها گفت من دیگه نمیتونم صبر کنم و حیرت همه را به دلیل کار عجیب پدر ببینم. من میرم و از اون میپرسم و به شما خبر میدم. بعد با ترس و لرز و احتیاط فراون پیش پدر میرو بعد از سلام و احترام ازش میپرسه پدرجان چرا یک چشم شما گریه میکنه و چشم دیگرتون میخنده؟ تو این چه رازیه که از ما پوشیده میدارید؟ پدر از پرسش غافلگیرکننده کننده پسرش تعجب کرد، خشمگین شد و چوبی رو که در کنارش بود برداشت و با شدت تمام به سمت پسرش انداخت. پسر بزرگ بسیار ترسید خودش رو کنار کشید تا چوب بهش نخوره و با شتاب با حراس فراوان از دربار پدرش به بیرون فرار کرد. برادرها ازش پرسیدند چی شد و از پدر چی شنیده؟ اون گفت اگه دوست دارید و بسیار مشتاق دانستن راز اون هستین خودتون برید و ازش بپرسید. برادر دوم مشتاق شد بدونه چی شده و چه رازی در میونه. او هم پیش پدر می رو به محض رسیدن به سرنوشت برادر بزرگترش دچار میشه. و وقتی پدرش چوبی به سمت اون پرتاب کرد او هم ترسان و پریشان از نزد پدر فرار کرد. برادر سوم ازش پرسید چه شده؟ و هم جواب داد بهتر خودت بری و ازش بپرسی این بار نوبت برادر سوم بود ولادیمر نزد پدر میره همین که وارد اتاق پدر میشه قبل از اینکه سلام کنه و چیزی از پدرش بپرسه شاه چوب خودش رو به طرفمون پرتاب کنه پسر سر خودش رو دزدید و چوب شاه به دیوار خورد پسر چوب رو برداشت و پیش پدر رفت و گفت پدرجان اگه میخواهی من رو بکشی این چوب رو بگیر و بکش و درست مرا بزن. چرا میخواهی من رو مثل سک ها بکشی؟ شاه خندان شد و گفت آفرین تو مثل برادرانت بزده نیستی. کمی امیدوار شدم. الان بگو از من چه میخواهی؟ بلادیمر گفت پرستش من همون پرستش برادرامه. چرا همواره به سمت شرق نگاه میکنید و یک چشم شما گریه میکنه و چشم دیگرتون میخنده؟ چه رازی تو این کاره که شما با هیچ کس درباره اون حرفی نمیزنید؟ شاه گفت پسرم من در جوانی دوستی بسیار بسیار عزیز و صمیمی در شرق داشتم. او اکنون پادشاه کشور ابریشمینه ما با یکدیگه عهد بستیم تا پایان عمر دوست یکدیگر بمانیم و از حال و روزگار هم خبردار باشیم اما الان اون درگیر جنگ با دشمنانه و نمیتونه به سراغ من بیاد من هر روز به سمت شهر خیره میشم و چشم انتظارش هستم یک چشم من در فراغ او گریه میکنه و آرزوی دیدار اون رو داره و چشم دیگرم که میخندد به این دلیله که فکر میکردم پسران شجا و کارآمدی دارم که بعد از مرگم حاکم این کشور میشن و سلطنت من فانی نیست اما از امروز باید هر دو چشمم گریه کنه چرا که از پسران خودم ناامید شدم و آیندهای روشن پیش و روی کشور خودم نمیبینم چون گفتگوی ولادیمر با پدرش به طول انجامید برادرها فکر کردند که پدر اون رو با چوب کشته و به این دلیل نگران حال اون بودند اما دیدند اون شاد و آرام از نزد پدر بیرون اومد و به اونها درباره دلیل کار پدر خبر داد پسر ارشد شاه فکری کرد و گفت من میرم و از پدر اجازه میگیرم که به کشور ابریشمین برم و دوست سمیمی اون رو پیدا کنم. او چنین کرد اسبی رهوار و آزوغی مفصل برداشت و به راه افتاد رفت و رفت و رفت اما هیچ کس نشانی از کشور عبری همین نداشت یک سال رفت و رفت تا به پل ای رسید و با خودش فکر کرد که این سفر سودی نداره و جز تلف کردن وقت چیزی آیدش نمیشه بعد برای اینکه هنگام برگشت همه حرفهای اون رو باور کنن قطعی از پل نقرهی را کند و به سمت کشور خودش و قصر پدرش به راه افتاد. وقتی پیش پدر برگشت برای اون شهر داد که حاصل یک سال سفر رسیدم پل نقرهی بوده و قطعی از اون رو هم با خودش آورده. پدر به پسر ارشدش گفت وقتی من جوان بودم در عرض دو ساعت به اون پول میرسیدم و تو یک سال برای رسیدن به اون تلف کردی. نه، تو نمیتونی دوست من رو پیدا کنی. پسر شرمگین شده و به اتاقش رفت. این بار نوبت به پسر دوم رسید و اون هم از پدر اجازه خواست که به جستجوی دوستش بره. رفت و رفت و بعد از یک سال به پل طلایی رسید. از سیر و سفر بی حاصل خودش خسته شد و قطعه از پل طلایی رو به عنوان مدرک برداشت و به کشورش برگشت و اون رو به پدر نشون داد. پدر خندید و افسوس خورد و گفت وقتی من جوان بودم فقط یک شب نیاز بود تا به اون پل برسم و تو یک سال عمر خودت رو تلف کردی. نه پشرم تو هم نمیتونی دوست گم شده ای دیرین من رو پیدا کنی. تو هم مرد این میدون نیستی. پسرش پسرشا تصمیم گرفت کاری که برادرای بزرگترش از انجام دادن اون ناتوان بودن انجام بده. پیش پدر می رو اجازه می خواد. پدر گفت برادرای بزرگترت نتونستن کاری از پیش ببرن. تو چجوری می بری و کشور عبریشمین دوست من رو پیدا کنی؟ پسر کچکتر به پدر قول داد که تلاش می کنه پدرش رو محقق کنه. پس به سمت استبل کاخ رفت تا بهترین و مناسبترین اسب رو انتخاب کنه در راه به دایه خودش رسید زن مهربانی که در کودکی اون رو بزرگ کرده بود و اون رو همچون فرزند خودش دوست داشت از پسر پرسید کجا میره پسر به اون شهر داد که برای انتخاب اسب میره تا سفر به کشور ابریشمین رو آغاز کنه دایه به اون توصیه کرد سرک دلبندم اگه میخوای حتما به کشور شمین برسی از داخل استاب اسبی انتخاب نکن به سمت انباری گوشه حیات کاخ برو اونجا سوتی کهنه و قدیمی میبینی اون رو بردار و سوتی بلند بزن به زودی چندین اسب تنومند و مهیای سفر به سمتت میان اما هیچ کدوم از اونها مناسب سفرتون نیستن کمی صبر کن اسبی پیر و و ناتوان بعد از اونها آروم آروم میان اون رو انتخاب کن و به سفر برو خداوند تو رو یاری کنه تا به مقصد و مقصود خودت برسی پسر شاه ازش تشکر کرد و رفت و طبق توصیه دایه عمل کرد و انجام اسب پیر و رنجور پیش آمد و گفت میدانم از من چه میخواهی تو راهی سفر به کشور ابریشمین هستی اما باید نخص کاری بکنی و اون اینی که نزد پدرت بری و ازش بپرسی زین کنه من و همچنین شمشیر پدرت کجاست؟ اون رو بگی رو بیار. پسر پیش پدر می زین زیین اسب و شمشیر اون رو درخواست میکنه. پدر تعجب میکنه و میپرسه از کجا درباره زین و شمشیرش اطلاع پیدا کرده. پسر جواب میده عجله دارم لطف کنین اون رو به من بدین. شاه گفت بسیار خوب اونها رو 25 سال پیش در انباری گذاشتند. بگو خدمتکارها اونها رو برات بیارن وقتی زین و شمشی رو آوردن پسر دید بسیار کهنه و فرسوده است اونها رو پیش اسب آورد اسب گفت امشب حرکت میکنیم و وسایل و اسباب سفر رو آماده کن اون شب وقتی ولادیمیر به سراغ اسب رفت تا سفر را آغاز کنه تعجب کرد چرا که اسب رو جوون و تنومند و سرحال و زین و شمشیر رو نو براق براغ و زیبا دید. همه چیز عوض شده بود. ولادیمیر سوار شد. اسب ازش خواست چشماش رو ببنده. اسب پرواز کرد و بالاتر از ابرها در آسمان جاری شد. رفت و رفت یک ساعت بعد از اون خواست چشماش رو باز کنه و پرسید چه چیزی رو میبینه. پسر جوون گفت پل نقرهای رو میبینه اسب گفت این همون پلیه که بزرگترین برادرت یک سال رفت و به اون رسید دوباره ازش خواست چشماش رو ببنده و یک ساعت بعد دوباره خواست اونها رو باز کنه پل طلایی پیدا بود اسب گفت این همون پلیه که برادر دومت یک سال رفت و به اون برسه اسب فرود اومد و گفت کمی استراحت میکنیم و بعد به راه خودمون ادامه میدیم تا صبح روز بعد به کشور ابریشمین برسیم. بعد از اندکی استراحت، ولادیمر دوباره سوار شد و عصب پرواز کرد. رفت و رفت تا وقتی که خورشید زرین و زیبا به زمین و اهل زمین لبخند زد و سلام کرد. اسب به ولادیمر گفت الان چشمار تو باز کن. ببین چه چیزی میبینی. ولادیمر نگاه کرد و اون چیزی رو که میدید نمیتونست باور کنه. زیباترین منظره‌ای که در تمام عمرش دیده بود زیر پای او آن پایین به چشم می‌خورد. همه جا سرسبز و پردار و درخت و گل‌های رنگارنگ و از پرندگان خوشاواز و بازی گوش که اینجا و آنجا جست و خیز و شادی می‌کردند پر بود. پرسید آیا اینجا کشور ابریشمینه؟ و از پاسخ داد، بله، سرانجام رسیدیم، اون پایین رو نگاه کن. اون خیمه بزرگ و شاهانه و زیبا، خیمه پادشاه این کشور و دوست پدرتوست. آماده باش تا در اونجا پایین بیایی. از پایین آمد و ولادیمر دید کنار خیمه دوست پدرش، اسبی درست شبیه اسب او بسته و در حال چراست. علادیمیر وارد خیمه شد و شاه را غرق خواب دید. کنار اون دراز کشید و چون بسیار خسته بود به خواب رفت. ساعتی بعد پادشاه بیدار شد و در کمال شگفتی پسر جوانی را که کنار خودش خوابیده بود دید. یک لحظه اون رو دشمن هنداش و برون شد که اون رو بکشه. اما با خودش فکر که وقتی جوون کنار من اومده من خواب بودم و اون میتونست من رو بکشه اما این کارو نکرده. پس دشمن نیست ناگهان بیرون خیمه در کنار اسب عصب خودش اسبی شبیه اون رو پیدا کرد و دریافت که این جوان از سمت دوستش اومده بی و با محبت پدرانه پسر رو بیدار کرد و پسر برای اون تعریف کرد که کی و چرا به اونجا اومده شاه کشور ابریشمین از شدت شوق و حیرت گریه سرداد و اشک شادی ریخ. و خدای خودش رو شکر کرد که آرزوی خودش رسیده و بعد از سالها از سمت دوستش پیامی برای اون اومده. اون وقت گفت پسرم با تمام وجود مشتاقم که نزد پدرت بیام و اون رو سیر ببینم اما نمیتونم چرا که دشمنای فراوونی دارم و الان در حال جنگ با اون و لحظه نمیتونم کشور رو رها کنم و به جای دیگه ای برم. پادشاه دستور داد برای ولادیمیر اسبش خوراکی بیارند و کمی استراحت کردند اما این آرامش ساعتی دیر نپایید چرا که گروهی انبوه از دشمنان کینتوز به سمت خیمه شاه یورش آوردند شاه و ولادیمیر جوان و شجا به دفاع برخاستند ساعتها نبرد تن تن کردند و تمام سپاهیان را کشتند مگر شش نفر که پای به فرار گذاشتند ولادیمر اونها رو تعقیب کرد. شاه فریازد. ولادیمر دنبال اونها نرو وگرنه گم میشی. شش نفر پشت دیواری پنهان شدند. ولادیمر به اندرز شاه اعتنا نکرد و به دنبال دشمنها به اون سمت دیوار رفت. ناگهان دیوار بسته شد و ولادیمر خود رو تو کشوری دیگه ای دید. روبروی خود کاخیدی که در اون، فوج فوج سرباز بیرون می اومدن. پسر شاه به درون کاخ رفت و در اونجا پیرزنی دید که پش می ریسید. وزیر و از دوکش به جای نخ سربازان بیشمار شما رو بی پایان تولید می و به حرکت در می اومدن. پسر جوان پیرزن رو کشت و دوکه نخ ریسی اون رو هم در هم شکست و جنازه پیرزن و دوک رو سوزان. اونها خاکستر شدن اما یکی از استخانهای پیرزن دوباره جان گرفت و پیرزن زنده شد. پسر به سمت اون رفت و دوباره هلاکش کنه. اما پیرزن اون بار به پسر گفت جوان از تو خواهش میکنم که دیگه منو نکشی. چون اگر این کارو بکنی دیگه هیچ وقت زنده نمیشم. تو مرا سوزاندی روح من پاک شده. من میدونم تو چرا به سرزمین ابریشمین اومدی. و آن چگونه به دنیای من اومدی؟ تنها کسی که میدونه تو چگونه میتونی از این دنیا به دنیای خودت بری منم. و اگه تو منو بکشی باید تا آخر و عمر در دنیای من بمونی. و دیگه روی وطن و خانواده خودت رو هیچ وقت نمیبینی. دل ولادیمر به رحم اومد. اون رو نکشته از اون خواست که ولادیمر به کشور ابریشمین بره. اما پیرزن خواهش اون رو رد کرد و گفت شاه اون کشور دشمن منه و سالهای سال با هم در حال جنگیم. الان من اعلام میکنم که هرگز به جنگ اون نمیرم و راه رو به تو نشون میدم و 24 و چهار میخه برلیان به تو هدیه میدم و برایت آرزوی سلامت و پیروزی دارم. شاه کشور ابریشمین، در تموم این مدت سوگ مندان گریه کرد و تصور میکرد که ولادیمر کشته شده و نمیدونست باید جواب دوستش رو چی بده. اما ناگهان ولادیمر رو زنده و شاداب جلو روی خودش دید. اون رو تو آغوش گرفت و گریه کرد و خدا رو شکر کرد که اون زنده برگشته. ولادیمر شرح سفر خود رو برای اون بازگو کرد و مجده داد که هرگز دشمن به کشور اون حمله نکنه. بعد اون میتونه به همراه ولادیمر به دیدن پدر ولادیمر بره. شاه کشور ابریشمین بسیار خوشحال و زنده دل شد و به زودی بار سفر به سمت کشور ولادیمر بز. هر دو سوار بر اصبهای پرنده خود شدند، رفتن دو رفتن تا به کوه شیشه ای رسیدن. شاه گفت ولادیمر جان افسوس که به آرزوی خود نرسیدم. من از اینجا بیشتر نمیتونم بیام. چرا که اسبم نمیتونه بیشتر از این پرواز کنه. ولادیمیر گفت چرا مگه مشکلی پیش اومده؟ شاه گفت میخای برلیان سمهای اسبم خراب شده و اون نمیتونه پرواز کنه. ولادیمیر گفت نگران نباشین من 24 میخه برلیان دارم و اینها مشکل اسب تو رو حل میکنه. اونها میخه سمهای اسب شاه رو عوض کردن. از دوباره پرواز کردند و روز بعد در کاخ شاه فرود اومدن. پدر ولادیمر هنوز به سمت شرق خیره بود و گریه می‌کرد و زار می‌زد. اما تا چشمش به پسرش ولادیمر و دوست قدیمی گم شدش افتاد از شدت خوشحالی بیهوش شد. و چون اون رو به هوش آوردن عشق شادی ریخ و اونها را در آغوش فشد. ساعتها جشن گرفتند و شادی‌ها کردند. شاه کشور به پدر ولادیمیر تبریک گفت که پسری چنین شجاع و کارآمد داره و تونسته دشمنان اون رو شکست بده و کشور ابریشمین رو از شر رو اونها خلاص کنه شاه خندید و گفت بله پسر شجاع لایقی دارم و خداوند رو شاکرم اما اون قد شجاع نیست که بتونه پسیکول و وتز رو شکست بده شاه کشور ابریشمین هم سخن اون رو تایید کرد و گفت بله در جهان هیچ کس نیست که بتونه بر اون پیروز بشه حتی ولادیمر شجاع و جوان ولادیمر که این حرفها رو شنیده بود از دوست پدرش درباره باره پیگو پرسید و اون ولادیمر رو اندرز داد که هیچگاه به اون فکر نکنه و در پی جنگ با اون نباشه چرا که هیچ کس در جهان نمیتونه اون رو شکست بده و جنگ با اون همونو هلاك شدن همان اما ولادیمیر بیدی نبود که به این بات بلرزه او از خودش رو جزم کرد که به جنگ پسیگلو وتس بره و اون رو نابود کنه پس پیش اسب پرنده خودش رفت و از اون درباره اون شخص پرسید اینکه آیا اسب اون رو میشناسه و تا الان سرزمین رو اون رو دیده یا نه اسب گفت اون رو میشناس و در سرزمین اون هم بوده و به ولادیمر قل که اون رو به سرزمین پشی گل و ببره. اون روز ولادیمر اشتراحت کرد و صبح روز بعد سوار بر اسب پرنده خود راهی سفر شد. چند ساعت گذشت و اسب به سرزمین اون رسید. از بالا کاخی را به ولادیمر نشون داد و گفت این کاخ اون هست و اون دختر زیبایی رو که میبینی دختر پادشاه کشور سیاهه که گلو وتس اون رو دزدیده و در کاخ خودش زندانی کرده. اونها تو کاخ فرود اومدن. دختر شاه سیاه در نگاه اول عاشق ولادیمر شده از اون خواهش کرد که به سرعت از اونجا دور بشه. چرا که پسی گلوویتس بی و خون ریزه و جون اون رو میگیره اما ولادیمر گفت برای جنگ با اون اومده و حراشی از اون نداره دختر شاه سیاه که از ما اون رو جزم دید گفت تنها میتونم تو رو راهنمایی کنم تا دست او شاید جان سالمه در ببری با هم به انبار برویم در اونجا نوشابه که اگه اون رو بنوشی قدرت متر رو پیدا میکنی و میتونی با اون نبرد کنی دختر چنین کرد و ولادیمر نوشابه سهرامیز و نیروزار رو نوشید و احساس کرد که بر ده مرد نیز میتونه پیروز بشه. در همین هنگام بود که آسمان تیره و تاریک و عبری سیاه پیدا شد که در حال فرود آمدن در کاخ بود. دختر فریاد زد این پسیگولویتسه مراقب باش. پسیگولویتس فرود اومد و با دیدن و ولادیمر لبخندی شریرانه زد و گفت به به جنام ولادیمر خوش اومدی 20 ساله که انتظار تو رو میکشم بیست سال پیش خواب دیدم که به جنگ من میان و به دست من کشته میشی با پای خودت به ورطه مرگ فرود اومدی این رو گفت و به سمت انبار رفت تا نوشابه سهرامیز رو بنوشه اما در اونجا خبر از نوشابه ندید بیرون اومد و گفت مهم نیست بدون نوشابه سهرامیزم میتونم تو رو می می نابود کنم پس به جنگ تا به جنگی جنگی و رو و رو تم شد و سه روز و سه شب به طول انجامید ولادی من که قدرتی العاده پیدا کرده بود سرانجام پیروز شد و با شمشیر خودش اون رو کشت و فریاد شادی برآورد. دختر شاه کشور سیاه پیش اون اومد. تبریک گفته از اون تشکر خواهش کرد که در کشور پشیگولویتس نزد اون بمونه و با هم زندگی کنن. اما ولادیمر مشتاق دیدار پدرش بود و نمیتونست اونجا بمونه. پس دختر شاه قبول کرد که او هم همراه ولادیمر بره. با اتاق مخصوص خودش رفته یک چوب به جنس بریلیان آورد و به ولادیمر داد و بهش گفت با این چوب به کاخ پشیگولولویتس بزن تا کاخ به اندازه یک سیب بشه تا اون رو با خودشون ببرن ولادیمر همین کار رو کرد کاخ اندازه یک سیب شد ولادیمر با دختر شاه سیا سوار بر اسب به سمت کشور خودش راهی شد ساعتی بعد اسب در کاخ پدر ولادیمر فرود اومد بلادیمر از سفر خود و جنگ با پسیگول و وتس حرفی به زبان نیاورد جایی وسی در نظر گرفت سیب رو به زمین گذاشت و با چوب برلیانی به اون زد و کاخ پسیگول و وتس بر شد و چشمها رو خیره کرد پدر ولادیمر و دوستش فهمیدن که چه اتفاقی افتاده و به قدرت درایت ولادیمر ایمان آوردند اون رو تو آغوش گرفتند و تشویخ کردند جشن بزرگی برپا شد شاه سیاه را نیز دعوت کردند و ولادیمیر با دختر اون ازدواج کرد. دوست قدیمی پدر ولادیمیر به عنوان هدیه ازدواج به ولادیمیر پادشاهی کشور خودش رو به اون سپرد. ولادیمیر تصمیم گرفت که بزرگترین برادرش پادشاه کشور پدرشون باشه و برادر دومش هم پادشاه کشور پسیگولو بتس بشه. ولادیمیر نیز همراه با همسرش تو کشور ابریشمین سال‌های سال با خوبی و خوشی زندگی کردند و مردم هم تو سایه حکومت اونها زندگی خوبی داشتند کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستیتی م ی وبلاگ ما یچرaین بی ال او <موسیقی> کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی